اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُونَ ثم تردون الى عالم الغیب والشهادت فیونبی اکن کنتم تعملون هنگامی که به سوی آنها بازگردید از شما عذرخواهی خواهی میکنند بگو عذرخواهی خواهی نکنید ما هرگز گفتار شما را باور نخواهیم کرد براستی که خداوند ما را از اخبار شما آگاه کرده است و به زودی خدا و رسولش اعمال شما را خواهند دید. آنگاه به سوی خدای دانای پنهان و آشکار بازگردانده می شوید، پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند،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 هنگامی که به سوی آنان بازگردید، برای شما به خدا سوگند یاد میکنند، تا از آنها چش پوشی و اعراض کنید. پس از آنها روی بگردانید و اعراض کنید، بیگمان آنها مردمی پلیدند، و جایگاهشان جهنم است، به کیفر آنچه که انجام میدادند. یحلفون لکم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ برای شما سوگند یاد می‌کنند تا از آنها راضی شوید اگر شما از آنها راضی شوید پس بیتردید خداوند از گروه فاسقان راضی نخواهد شد الاعراب اشد كفر و نفاق و أجدوا ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم كوف و نفاق اعراب باجين شين شديد ترست و بنا آگاهی از حدود و احکامی که خدا بر پیام برش نازل کرده سزاوار ترند و خداوند دانای حکیم است و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مرمن و یتربص بكم المد علیهم السوء و الله سمیع علیم از اعراب بادی نشین کسانیند که آنچه را در راه خدا انفاق میکنند کنند غرامت به حساب میآورند و منتظرند حوادث و پیش آمد ناگواری به شما برسد حوادث بد و ناگوار بر خودشان باد و خدابند شنوای داناست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 از اعراب بادی نشین کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و آنچه را در راه خدا انفاق میکنند سبب تقرب به خدا و دعای پیام میدانند آگاه باشید بیگمان اینها سبب تقربشان خواهد بود و خداوند به زودی آنها را در رحمت خود وارد خواهد کرد، بیگمان خداوند آمرزندی مهربان است.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 و اعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم و پیش گامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که بنیجی از آنها پیروی کردند خداوند از آنها خشنود گشت و آنها نیز از او خشنود شدند و برای آنها باغهایی از بهشت آماده کرده است که نهرها از زیر درختان آنجاری است جاودانه آن خواهند ماند این کامیابی بزرگ است و ممن من حولکم من, من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علن فاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم يردون إلى عذاب عظیم و میان اعراب بادی نشین که پیرامون شما هستند گروهی منافقند و از اهل مدینه نیز گروهی خوی نفاق گرفته اند. تو آنها را نمی شناسی ولی ما آنها را میشناسیم. به زودی انها را دوبار عذاب خواهیم کرد، سپس به سوی عذابی بزرگ پرستاده می شوند. و آخرون اعترفو بذنوبهم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم این الله غفور رحیم و گروه دیگری نیز هستند که به گناهان خود اعتراف کردند کارهای شایسته و ناشایسته را به هم آمیختند امید است که خداوند توبه آنها را بپذیرد بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است خود من اموالهم صدقتا تطهرهم و بها و صلی ان صلاتك سكن سکن لهم والله سمیع علیم. از اموال آنها صدق و زکات بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و تسکیهشان کنی و برایشان دعا کن یقینا دعای تو مایه آرامش برای آنهاست و خداوند شنوای داناست علم یعلمون ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم آیا نمی‌دانند که تنها خداوند توبه را از بندگانش میپذیرد و صدقات را میگیرد و بی گمان خداست که توبه پذیر مهربان است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 عمل کنید، پس بزودی خداوند و پیام برش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید. و به زودی به سوی خدای دانای پنهان و آشکار بازگردانده می شوید پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. و آخرون مرجون لامر الله، یعذبهم و ما و و گروه دیگری نیز موقوف به فرمان و مشیت خداست یا آنها را عذاب میکند و یا توبه آنها را میپذیرد و خدا بند دانای حکیم است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 وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ عَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ و کسانی که برای زیان رسانیدن به مسلمانان و کفر و تفرق افکنی میان مؤمنان مسجدی ساختند، و تا کمینگاهی برای کسانی که از پیش با خدا و رسولش مبارزه کرده اند باشد و البته آنها سوگند یاد می کنند که قصدی جزنیکی نداشته و خداوند گواهی می که یقیناً آنها دروغگو هستند لا تقوم فيه ابداست لَمَسْجِدٌ اُسْتِسَ عَلَى السَّقْوَامٍ من اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ای پیامبر هرگز در آن مسجد نئیست آن مسجد که از روز نخست بر پایی تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن به نماز بیستی در آن مردانی هستند که دوست دارند که پاکیز شوند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد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 آیا کسی که اساس و بنیان آن را بر ترس از خدا و خوشنودی او آن را بنا کرده بهتر است، یا کسی که اساس و بنیان آن بر کنار پردگاه سستی نهاده است؟ پس ناگهان با او در آتش جهنم فرو زد و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند، لا يزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله علیم حكیم آن بنایی که آنها نهادهاند پیوسته در دلهایشان مایهٔ شک و نفاق خواهد بود مگر اینکه دلهایشان پار پاره شود و بمیرند و خداوند دانای حکیم است این الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حفا في التورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله تباشروا ببيعكم بی الذي به و ذلك هو الفوز خداوند از مؤمنان جانهایشان و اموالشان را خریده است به بهای اینکه بهشت برای آنها باشد بدین صورت که در راه خدا جنگ میکنند، پس میکشند و کشته میشوند. این وعده است بر او که در تورات و انجیل و قرآن آمده است و چه کسی از خدا به اهدش وفادار تر است پس شاد باشید به داد و ستدی که شما با او کرده اید به این همان کامیابی بزرگ است از ساجدون الامرون بالمعروف و عن المنکر و لحدود الله و بشر المؤمنین انها <م> آبدان <commence> رکوع کنندگان سجده کنندگان فرماندهندگان به معروف و باز دارندگان از منکر و حافظان و نگهدارندگان حدود و احکام الهی هستند و مؤمنان را بشارت ده ما کان والذین آمنوا تغفر للمشركين ولو كانوا ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم براي بر و كساني که ایمان آوردند شایسته نبود که برای مشرکان طلب آموزش كنند هرچند از نزدیکانشان باشند بعد از آنکه برای آنها روشن شد که آنها اهل دوزخند و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا عن موعدت وعدها اما تبین له انه عدو لله تبر امینه این ابراهیم و آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش نبود مگر به خاطر وعده ای که به او داده بود پس چون برای او آشکار شد که او دشمن خداست، از او بیزاری جست، بیگمان ابراهیم لابه کننده بردبار بود. و ما کان الله لیضل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یستقون این الله بكل شیئین علیم و هرگز خداوند قومی را بعد از آنکه آنها را هدایت کرد گمراه نمی کند تا آنکه چیزهایی را که باید از آن بپرهیزند برای آنها بیان کند بیگمان خداوند بر هر چیزی داناست إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قینا فرمانروای آسمانها و زمین از آن خداست زنده می و می‌میراند و شما را جز کار ساز و یاوری نیست لقد تاب الله على النبی والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعت العسره الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم ات ان رحمت رحمت را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار آنان که در زمان سختی و تنگ دستی از او پیروی کردند نمود، بعد از آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف شود، سپس توبه آنها را پذیرفت. بیگمان او نسبت به آنها رعوف و مهربان است. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم و همچنین بر آن سه نفری که موقوف گذاشته شدند تا آنگاه که زمین با همه فراخیش بر آنها تنگ شد و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست سپس رحمت خود را شامل حال آنها نمود تا توبه کنند و توبه آنان را پذیرفت. بیگمان خداوند است که توبه پذیر مهربان است. یا <تصفح> ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و مع الصادقین <تصفح> ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید ما با راست گویان باشید ما کان لأهل المدينة و من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا, ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْنَطَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ ولا يطؤون موطئا يغيذ الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين سزابار که اهل مدينه و اعراب بادی نشین که اطراف آنها هستند از همراهی رسول خدا باز پسمانند و نه برای حفظ جان خود از جان او چشم بپوشند این بدان سبب است که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنها نمیرسد و هیچ جا منزل نمی کنند و گامی که موجب خشم کافران شود بر و هیچ دستبرد و گزندی به دشمن نمیرسانند مگر اینکه به سبب آن عمل صالحی برایشان نوشته شود بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را زایع نمیکند ولا ینفقون نفقة صغیرة ولا كبیرة ولا یقطعون وادیا إِلَّا كُتِبَ لهم اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ و هیچ مال کوچکی یا بزرگی را در راه خدا انفاق نمی کنند به هیچ وادی و سرزمینی نمی پیمایند مگر اینکه برای آنها نوشته می شود تا خداوند پاداش نیکوترین کردارشان را به آنها بدهد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 لیتا فتَهُ فید دین و لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. و ممکن نیست که مؤمنان همگی برای جهاد کوچ کنند؟ پس چرا از هر گروهی از آنان دستهای کوچ نمیکنند تا در دین دانش بیاموزند؟ و قوم خود را هشدار دهند هنگامی که به سوی آنها بازگشتند باشد که آنها بترسند یا ایوها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونكم من الكفار و فیکم و اعلمو ان الله مع ای کسانی که ایمان آورده اید با کسانی که از کافران که نزدیک شمایند جنگ کنید و باید آنها در شما شدت و درشتی بیاوند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است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 و هنگامی که سور ای نازل شود پس بعضی از آنها به دیگری میگوید این سوره ایمان کدام یک از شما را افزود، به آنها بگو اما کسانی که ایمان آورده اند پس به ایمانشان افزوده، و آنها شادمانی می کنند و الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون فاما كساني که در دلهایشان هایشان بیماری است پس پلیدی به پلیدیشان افزوده و در حالی که کافر بودند مردند ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون اايا انهم نمیبینند که در هر سال یک یاد و بار آزمایش میشوند باز توبین می کنند و نه آنها پند می گیرند و اذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم من صرف الله قلوبهم هم قوم لا یفقهون و هنگامی که سوری نازل شود بعضی از آنها به بعضی دیگر نگاه می کنند گویند آیا کسی شما را می بیند سپس باز میگردند خداوند دلهای آنها را از حق باز گردانید زیرا که آنها گروهی اند که نمی فهمند لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم یقینا پیام بری از میان خودتان به سویتان آمد که رنجهای شما بر او دشوار و گران است و بر هدایت شما سخت اصرار دارد و نسبت به مؤمنان رعوف و مهربان است فَإِن فقل فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم. پس اگر روی برگردانند بگو خدا برای من کافی است هیچ معبودی به حق جز او نیست بر او توکل کردم و او پروردگار عرش عظیم است بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الكتاب الحکیم. الف لام را. این آیات کتاب محکم است. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أن أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أن أَنْذِرِ النَّاسَ ناس و بشیر الذین ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون این هذا لساحر مبین آیا برای مردم موجب شگفتی است که به مردی از خودشان وحی کرده این که مردم را به و کسانی که ایمان آورده اند بشارت ده که برای آنها سابقینی نیکون نزد پروردگارشان است کافران گفتند این مرد جادوگر آشکاری است إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذالکم الله ربکم افلا تذكرون. بی گمان پربردگار شما الله است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش مستوی شد کار جهان را تدبیر می کند هیچ شفاعت کننده ای نیست مگر بعد از فرمان او این است الله پروردگار شما پس او را پرستش کنید آیا پند نمیگیرید؟ گیرید ایلیه مرجعكم جمیعا وعد الله حقا اینه یبدع الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَالَّذِينَ كفروا لهم شراب من حمیم وعذاب عَلِيمٌ بما كانوا يَكْفُرُونَ بازگشت همه شما به سوی اوست بعده خداوند حق است بیگمان او آفرینش را آغاز می کند. سپس آنها را باز می گرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به عدالت پاداش دهد و کسانی که کافر شدهاند برایشان نوشیدنی از آب جوشان است و عذابی دردناک به سبب آنکه کفر می‌ورزیدند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 یُفَصِّلُ الْآيَاتِ او کسی است که خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد و برای آن منازلی مقدر کرد تا عدد سالها و حساب را بدانید خداوند این را جز به حق نیافریده است آیات را برای گروهی که می‌دانند به تفصیل بیان میکند این فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لایات لقوم یتقون بیگمان در آمد و شده شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده است نشانه است برای گروهی که پرهیدگاری می کنند این الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَبُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا بها بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَافِلُونَ همانا کسانی که ملاقات ما را امید ندارند و به زندگی دنیا خوشنود شده و به دنبال بسته اند و کسانی که از آیات ما غافلند. اولئک مأواهم النار بما كانوا يكتبو آنها جایگاهشان آتش جهنم است. به سبب کارهایی کنجا می دادند این الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِی ایمَانِهِمْ تجری مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را به های بهشت پر نعمت هدایت می کند که نرها زیر درختان آنجاری است. دعواهم فیها سبحان اللهم و تحییتهم فیها سلام، و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. دعایشان در آن خداوندا تو منزهی باشد و تهیتشان در آن سلام و پایان دعایشان این است که همد و سپاس مخصوص خدا پروردگار جهانیان است ولو یعجل الله لیند و الناس الشر است عجالهم بالخير لقبیا إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقانا في قويعانهم يعمهم و اجر خداوند زود مردم را مجازات می کرد. گونه که آنها برای خیر عجله دارند عمرشان به پایان می رسید. پس کسانی که به ملاقات ما امید ندارند به حال خود رها می کنیم، تا در تغیان خود سرگردان بمانند و اذا مثل الانسان ضر عامل جنبی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 و چون به انسان زیان ورنجی برسد، در هر حال که باشد، به پهلو خوابیده یا نشسته، یا ایستاده ما را میخواند. پس هنگامی که آن زیان ورنج از او برطرف کردیم، چنان می رود که گویی هرگز ما را برای دفع زیان ورنج که به او رسیده بود نخوانده است. اینگونه برای کاران آنچه میکردند زینت داده شده است.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 به راستی که ما امتهای پیش از شما را هنگامی که ستم کردند، هلاک کردیم، در حالی که پیامبران آنها با دلیل روشن به سوی آنان آمدند و آنها ایمان نیاوردند، این گونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم. ثم جعلناكم خلائف فی الأرض من بعدهم لننظر كیف تعملون سپس شما را پس از آنها روی زمین جانشینان قرار دادیم تا بنگریم که چگونه عمل میکنید وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي ان ابدله من تلقائي نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي إني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده شود کسانی که به ملاقات ما در روز قیامت امید ندارند گویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تغییر بده ای پیامبر بگو من حق ندارم که آن را از پیش خود تغییر دهم و من پیروی نمی‌کنم مگر آنچرا که بر من وحی میشود. و من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا أدراكم به فقد لبیفت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون بگو اگر خدا میخواست من آن را بر شما نمی و نه خداوند شما را از آن آگاه می کرد به راستی که پیش از این عمری را در میان شما گذرانده ام آیا نمیاندیشید؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِ آیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ پس چه کسی ستمکار است از آن کسی که بر خدا دروغ میبندد و یا آیات او را تقضیب میکند بیگمان مجرمان رستگار نخواهند شد وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ, ويقولون هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ الله تنبیعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون غیر از خدا چیزهایی را میپرستند که به آنها زیانی میرساند و نسودشان میبخشد می‌گویند اینها شفیعان ما نزد خدا هستند بگو آیا خدا را به چیزی که در آسمانها و در زمین نمی‌داند خبر می‌دهید منزه است او و از آنچه با او شریک می‌سازند برتر است و ما ناسو الا واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون آغاز مردم جزء امته واحدی نبودند پس اختلاف کردند و اگر فرمانی نبود پیش از این از پروردگار صادر شده بود در میان آنها در آنچه که در آن اختلاف داشتند داوری میشد. شد و لولا انزل عليه آیت من ربه فقل انما الغیب لله فانتظرو انی معكم من المنتظرين. و میگویند چرا معجزه‌ای از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است پس بگو علم غیب تنها از آن خداست پس شما انتظار بکشید که من نیز با شما از منتظرانم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 این رسولنا ما و هنگامی که به مردم پس از رنج و زیانی که به آنها رسیده است رحمتی به چشانین. آنگاه آنها در آیات ما نیرنگ می کنند بگو خداوند در نیرنگ زدن سریع تر است بی تردید رسولان ما آنچه نیرنگ می می‌نبینند. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وظنوا ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوة الله مخلصين له الدين لأن من هذه لنكونن من الشاكرين او است که شما را در خشکی و دریا به حرکت در می آورد تا آنگاه که در کشتی قرار می گیرید و کشتیها با بادی ملایم آنها را به سوی مقصد حرکت می دهند و آنها به آن شادمان می شوند. ناگهان طوفان شدیدی می بزد و موج از هر سو به سوی آنها بیاید گمان کنند که راه گریزی ندارند و هلاک خواهند شد خدا را از روی اخلاص میخوانند که اگر ما را از این گرفتاری نجات دهی قطعا از سپاز گذاران خواهیم بود فلما جاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق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 پس چون خداوند آنها را نجات داد آنها به ناحق در زمین سرکشی و ستم می کنند. ای مردم سرکشی و ستم شما تنها به زیان خودتان است. متاع زندگی دنیاست سپس بازگشتتان به سوی ماست ما پس شما را به آنچه انجام میدادید خبر میدهیم. این؟ نما مَثَلُ الحیات الدنیا كَمَا إِنْ أَذَلْنَاهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ تَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى حتى اذا آخذت الارض زخرفها و وظن اهلها وظن أنهم قادرون عليها اتاه امرنا ليلاًأو نهارا فجعلناها, فجعلناها حصیدا که ان لم تغنبی الامر کذالک نفصل ال آیات لقومی یتفکرون زندگی دنیا همانند آبیست که از آسمان نازل کردیم سپس بر اثر آن گیاهان گوناگون زمین از آنچه مردم و چهار پایان میخورند روی. تا زمانی که زمین پیریه خود بگرفت و آراسته شد و اهل آن گمان کردند که خود بر آن چیره اند ناگهان فرمان ما در شب یا روزی فرار رسد و آنچنان آن را درو کنیم که گویی دیروز هرگز نبوده است. اینگونه آیات خود را برای گروهی که می اندیشند به تفصیل بیان می‌کنی. و الله يدعو الى دار السلام و يهدي من يشاء الى صراط مستقیم و خداوند به سرای سلامتی دعوت می کند. و شخص را بخواهد به راه راست هدایت میکند للذین احسنوا الحسنى <سؤال> وزیاده ولا یرهقو وجوههم قتر و لا ذن له اولئک قومه برای کسانی که نیکی کردند پاداش نیک است و ابزون بر آن و تیرگی و خاری چهره‌هایشان را نپوشاند اینان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند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 اولائك اصحاب النار هم فیها خالدون و کسانی که مرتکب بدی ها شدند پاداش هر بدی همانند آن است و خاری چهرههای آنها را میپوشاند و هیچ کس نمیتواند آنها را از عذاب خدا نگهدارد چنان شوند که گویی با پاری از شب تاریک چهره هایشان پوشیده شده از اینان اهل آتش دوزخند و جاودان در آن خواهند ماند و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشراکو مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم و قال شرکاؤهم ما كنتم ایانا تعبدون و به یاد آورید روزی که همه آنها را گرد آوریم سپس به کسانی که شرک آوردند گوییم شما و معبودهایتان در مکان خودتان بمانید پس آنها را از یکدیگر جدا می کنیم و معبودهایشان به آنها میگویند شما ما را عبادت نمی کردید فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان كنا عن عبادتکم لغافلین پس بس از که خدا میان ما و شما گواه باشد که ما یقینا از عبادت شما بیخبر بودیم هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردو الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا آنجا هر کس هرچه پیش فرستاده است می آزماید و همه به سوی الله مالک حقیقیشان بازگردانده می شوند و چیزهایی را که می بستند از نظرشان گمبنا بود می شوند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 و قل افلا تتقون بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد کیست که مالک شنوایی و بینایی هاست و چه کسی زنده را از مرد بیرون می آورد و مرد را از زنده بیرون می آورد. و چه کسی کار جهان را تدبیر می کند پس بیدرنگ خواهند گفت الله پس بگو آیا از او نمی ترسید فذالكم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون پس آن الله پروردگار حقیقی شماست پس بعد از حق چه چیزیست جز گمراهی پس چگونه روی گردان میشوید كذلك <تصفيق> حقا <تصفيق> كلمه ربك على الذين فتقوا انهم لا يؤمنون این چونین سخن پروردگارت بر کسانی که فاسق شدند ثابت شده که آنها ایمان نمیآورند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 بگو آیا از این معبودهای شما کسی هست که آفرینش شما را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند بگو الله آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند پس چگونه منحرف حرف می شوید؟ قل هل من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 بگو آیا از این معبودهای شما کسی هست که به سوی حق هدایت می کند بگو الله به سوی حق هدایت می کند آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند برای پیروی سزاوار تر است یا کسی که خود هدایت نمی شود مگر آنکه هدایتش کنند پس شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ وما يتبع اكثرهم الا ظنا اننا لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون و بیشتر آنها جز از گمان پیروی نمی کنند بی تردید گمان از حق بی نیاز نمی کند یقینا به آنچه می‌کنند داناست. داناست وما کان هذا القرآن این یفترا من دون الله ولكن تصدیقا الذي بین یدیه ولكن تصدیق لما بين يديه تفصیل الكتاب لا ریب فيه من رب العالمين و سزابار نیست این قرآن به دروغ بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شود بلکه تصدیق کننده چیزی است که پیش از آن نازل شده است و بیان و تفصیل آن کتاب است شکی در آن نیست از جانب پروردگار جهانیان است. ام یقولون افتراه قل فأتو بسورت مثله و ادعو من استطعتم من دون الله این انتم آیا آنها میگویند او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است بگو اگر راست میگویید پس یک سوره همانند آن بیاورید و جز خدا هر کرا که را که میتوانید به یاری بخوانید بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بلكه آنها چيزي را تكذيب كردند که به آن علم و احاطه نداشتند و هنوز برای آنها مستاق و حقیقت آن نیامده است به گونه کسانی که پیش از آنها بودند نیز تگذیب کردند پس بنگر سرانجام ستمکاران چگونه بوده است و من من یؤمن و من من لا یؤمن به و اعلم بالمفسدین و از آنها کسی هست که به آن ایمان می آورد و از آنها کسی هست که به آن ایمان نمی آورد و پروردگار تو به مفسدان آگاه تر است و این کذب کف قلی عملی لکم عملکم انتم برئون مما اعمل وانا برئ من ما تعملون اگر کافران تو را تکذیب كردند پس بگو عمل من برای خودم و عمل شما برای خودتان است شما از آنچه من میکنم بیزارید و من نیز از آنچه شما میکنید بیزارم و منهم من یستمعون من الیک تسمع الصم ولو كانوا لا یعقلون. و از آنها کسانی هستند که به تو گوش فرا میدهند. آیا تو میتوانی کران را بشنوانی و هرچند نفهمند و منهم من ينظر إليك اف انت تهدي ولو كانوا لا يبصرون و از آنها ها که به تو مینه آیا تو می توانی کوران را راهنمایی کنی و هرچند چند نبیلند این الله لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون یقینا خداوند به مردم هیچ ستم نمی‌کند ولی مردم به خیشتان ستم می‌کنند او يحشرهم یحشرهم کان لم یلبثوا الا ساعه من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبو بلقاء الله و ما کانو مهتدین و روزی که خداوند آنها را محشور می چنان احساس می کند گویی ساعتی از روز که یک دیگر را بشناسند در دنیا درنگ نکرده اند. براستی کسانی که لقای خداوند را تگذیب کردند، زیان کردند و هدایت نیافتند و ایما نرینک بعضا لذی نعدهم أو نتوفینک فالینا مرجعهم عمر هم سم الله شیددونعلم سالوم و اگر پاره از چیزهایی را که به آنها عدداد این به تو نشان دهین یا تو را بمیرانیم پس باز گشتشان به سوی ماست پس خداوند بر آنچه که میکنند گواه است و لیکل امت رسول فا اذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقفط و لا یظلمون برای هر امتی پیامبری است پس هنگامی که پیامبرشان آمد میان آنها به عدالت داوری شود و به آنها ستم نخواهد شد و ایقولون متى هذا و میگویند اگر راست میگویید این وعده عذاب کی خواهد بود قل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون بگو من برای خودم مالک هیچ زیانی و سودی نیستم جز آنچه خدا بخواهد برای هر امتی سرامدی است هنگامی که سرامد آنها فرارسد پس نه ساعتی تأخیر میکنند و نه پیشی میگیرند قل أرأیتم ان أتاكم عذابه بیاتا او نهارا ماذا ستعلمنهرمن بگو به من خبر دهید ده اگر عذاب او شبانگاه یا در روز به سراغ شما آید مجرمان چه چیز را اینگونه به شتاب می‌طلبند اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون باز هنگامی که عذاب واقع شد آیا به آن ایمان می‌آورید آنگاه گفته می‌شود حالا در حالی که با شتاب آن را می‌خواستید ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون سپس به کسانی که ستم کردند گفته می‌شود عذاب جاوید را بچشید آیا جز به آنچه که می کردید کیفر داده می‌شوید و استن قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین و از تو خبر میگیرند آیا آن حق است؟ بگو آری ساگند به پروردگارم قطعاً آن حق است و شما عاجز کننده نیستید. ولو أن ان نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به، و اسرن ندامت لما رأو العذاب و قضی بینهم بالقفط لا یظلمون و هر کس که ستم کرده اگر تمام آنچه در زمین است داشته باشد حتما همه را برای نجات خودش میدهد و هنگامی که عذاب را ببیند پشیمانی خود را کتمان کنند و میان آنها به عدالت داوری شود و به آنها ستم نخواهد شد الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. آگاه باشید بیشک آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست آگاه باشید همانا بعد خدا حق است ولی کن بیشتر آنها نمیدانند. او قوه یحیی و یمیت و, و ترجعون و که زنده می کند و میمیراند و همه به سوی او بازگردانده میشوید یا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فی الصدور وهدا وهدى ورحمة ای مردم به راستی که برای شما از جانب پروردگارتان موعظه‌ای آمد و شفایی برای آنچه در سینه‌هاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است قل بفضل الله وبرحمته فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِن مَا يجمعون. بگو به خدا و به رحمت او پس با یک بدان خوشحال شوند که آن از آنچه میاندوزند بهتر است قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا بگو به من خبر دهید آنچه از روزیی که خداوند برای شما نازل کرده است پس بخشی از آن را حلال و بخشی را حرام نموده اید بگو آیا خداوند به شما اجازه داده است یا بر خدا دروغ میبندید و الذين يفترون على الله الكذب يوما قيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون و کساني که بر خدا دروغ میبندند در باری روز قیامت چه می بیگمان خداوند بر همه مردم فضل و کرم دارد، ولی کن بیشترشان سپاسگزاری نمی کنند.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 و در هیچ کار و حالی نباشی و هیچ بخشی از قرآن را نمیخوانی و هیچ عملی را انجام نمیدهید مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم هنگامی که در آن عمل وارد میشوید و هم وزن در زمین و نه در آسمان بر پروردگارت پوشیده نمیماند و نه کوچکتر از آن ذره و نه بزرگتر مگر اینکه در کتاب روشن است الا ان أولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آگاه باشید همانا دوستان خدا نترسی بر آنهاست و نه آنها غمگین میشوند وكانوا يتقون همان کسانی که ایمان آوردند و پرهیزگاری کردند لهم البشرا في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلک هو الفوز العظیم برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت بشارت است سخنان خدا تغییر ناپذیر است این همان کامیابی بزرگ است ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا و السمیع العليم ای پیامبر سخن آنها تو را غمگین نکند بی گمان تمام عزت و پیروزمندی از آن خداست او شنوای داناست علا این لله من فی السماوات و فی الارض. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءِ ای این يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا آگاه باشید هر که در آسمان ها و هر در زمین است از آن خداست و کسانی که غیر خدا شریکان را می‌خوانند، پیروی از دلیلی نمی‌کنند. آنها تنها از گمان پیروی می‌کنند و آنها فقط دروغ می‌گویند. هواللذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مبصرا ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ او کسیست شب را برای شما قرار داد تا در آن آرام بگیرید و روز را روشن قرار داد بیگمان در اینها نشانه هاییست برای گروهی که میشنوند. قال قَالُ اللَّهُ ذو بحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون مشركان گفتند خداوند فرزندی برگزیده است او منزح است او بینیاز است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست هیچ دلیلی نزد شما بر این ادعا نیست آیا بر خدا چیزی میگویید که نمیدانید قل ن الذین یفترون علی الله الكذب لا یفلحون بگو بیگمان گمان کسانی که به خدا دروغ می‌بندند راستکار نمی‌شوند متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون ناچیز در دنیا دارند آنگاه بازگشتشان به سوی ماست، سپس عذاب سختی به سبب آنکه کفر میبرزیدند به آنها میچشانیم.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 امركم و شركاءكم ثم لايك امركم عليكم غمه ثم مقضى ثم مقضى الي ولا تنظرون فداستان نوح را برانها بخوان چون به قوم خود گفت اي قوم من اگر اقامت من و یادآوری من به آیات خدا بر شما گران آمده است پس من بر خدا توکل کردم شما تدبیر و اندیشه خود و معبودهایتان را جمع کنید سپس هیچ چیز از کارهایتان بر شما پوشیده نماند آنگاه برای کشتنم به سوی من هجوم آورید و لحظه ای مرا مهلت ندهید فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ إن عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پس اگر روی بگردانید من در مقابل دعوتم از شما هیچ مزدی نخواستم مزد من تنها بر خداست و من مأمور شدیم که از مسلمانان باشم. فكذبوه فنجينا و معه في الفلك وجعلناهم خلائف فوأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا فهو ظر كيف كان عاقبة المذرين پس آنها او را تکذیب کردند، آنگاه ما او و آنان که با او در کشتی بودند نجات دادیم و آنها را جانشین قرار دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم پس بنگر که سرانجام بیم دادگان چگونه بود؟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 سپس بعد از او پیام برانی به سوی قومشان فرستادیم، پس آنان دلایل روشنی برایشان آوردند، پس آنها مستعد نبودند که به آنچه چه پیش از آن تکزیب کرده بودند، ایمان آوردند، این بر دلهای تجاوز کاران مهر می نهیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پس بعد از آنها موسا و برادرش هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم. پس آنها تکبر برزیدند و آنها گروه مجرم بودند فلما جاءهم الحق من عندنا قالو هذا لسحرم پس چون حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند بیگمان این جادویی آشکار است قال <موسیقی> موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا یفلح الساحرون موسی گفت آیا در باری حق چون برای شما آمده است چنین میگویید آیا این جادوست در حالی که جادوگران رستگار نمیشوند؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما عم وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء و تکون لکم فی الارض و نحن لکما بمؤمنیم گفتند آیا آمده ای که ما را از آنچنیاکان منبر من بر آن یافتیم بازداری و بزرگی و حکومت در روی زمین از آن شما دوتن باشد ما به شما دو نفر ایمان نمی آوریم وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم وفرعون گفت تمام جادوگران ماهر و دانا نزد من بیاورید فلما جاء السحرة قال لهم موسىلو ماء از چون جادوگران آمدند موسی به آنها گفت آنچه شما از وسایل سهر میتوانید بیبكنید بیاکنید. فلما ألقوا قال موسی ما جئتم به السحر إن الله اِنَّ الله لا يُفْلِحُ عمل پس چون افکندند موسا گفت آنچه شما آورده اید سهر است بیگمان خداوند آن را باطل خواهد کرد همانا خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی کند و الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون و خداوند با کلمات خود حق را ثابت و پایدار می گرچه مجرمان کراحت داشته باشند و ما مُوسَى إِلَّا إلا مِنْ قَوْمِ پس فرعون ان يفتنهم ان فرعون لعال في الارض و لمن المسرفين بس هیچ کس به موسی ایمان نیاورد جز گروهی اندک از قوم او آن هم با ترس فرعون و اطرافیانش که مبادا آنها را بیازارد و بیشک فرعون در زمین سرکش بود و همانا او از اصرافکاران بود و قال موسی قوم این کنتم آمنتم بالله فعليه توکلو فعليه توکلو این کنتم مسلمین گفت ای قوم من اگر شما به خدا ایمان آورده اید پس بر او توکل کنید اگر مسلمان هستید وقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين گفتند بر خدا توکل کرده این پروردگارا ما را دستخوش فتنه گروه ستمگر قرار نده و نجینا برحمت من القوم الكافرین و به رحمتت ما را از شر گروه کافران نجات بده و اوحینا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ فَبِـمُوسَى وَبَرَادَرَش هَارُونَ وَعَهْدْ برای قوم خود هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید و هایتان را عبادتگاه قرار دهید و نماز را برپا دارید و ای موسی مؤمنان را به پیروزی و بهشت به بشارت بده و قال موسا ربنا این أنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمث على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم و موسی گفت، پروردگارا، تو به فرعون و اطراف یا زینت و اموالی فراوان در زندگی دنیا داده ای. پروردگارا، تا بدین وسیله دیگران را از راه تو گمراه کنند، پروردگارا، اموالشان را نابود کن و دلهایشان را سخت کن، پس آنها ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را ببینند، قال قد أجیبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبل الذين لا يعلمون خداوند فرمود قتعا دعای شما دو نفر پذیرفته شد پس استقامت کنید. از راه کسانی که نمیدانند پیروی نکنید و ببني ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بریا و اذا ادركه الغرق قال لا الذي به بنو إسرائيل من المسلمين ما بني اسرائيل را از دریا گذرانديم پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تعدی در پی آنها رفتند چون فرعون هنگام غرق شدنش پرارسید گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی به حق نیست جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند و من از مسلمانان هستم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين به او گفته شد حالا در حالی که قبلا نافرمانی کردی و از مفسدان بودی فل يوما ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه و این کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون پس امروز بدنت را از دریا نجات می تا عبرتی برای کسانی که بعد از تو می آیند باشی و بی گمان بسیاری از مردم از آيات ما غافلند و لقد بوئنا بنی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 راستی که بنی اسرائیل را در جایگاه نیکو منزل دادیم و از پاکیزه ها روزیشان دادیم پس اختلاف نکردند تا اینکه علم و آگاهی برایشان آمد بیگمان پروردگار تو روز قیامت در آنچه در آن اختلاف میکردند میانشان داوری خواهد کرد و این کنت فی شکی من ما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين پس اگر در آن چه بر تو نازل کرده این در تردید هستي از کسانی که کتاب آسمانی پیش از تو را می‌خوانند بپرس یقینا حق از طرف پروردگارت به تو رسیده است پس هرگز از تردید کنندگان مباش ولا تکونن من اللذین كذبوا بآیات الله فتكون من الخاسرین و مباش هرگز از کسانی که آیات خدا را تکذیب کردند، آنگاه از زیانکاران خواهی بود. این الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ ربك لا يُؤْمِنُونَ بیگمان کسانی که فرمان پروردگار بر آنها تحقق یافته، ایمان نمی آورند. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم هرچند که هر گونه آیه و معجزه برای آنها بیاید تا زمانی که عذاب دردناک را ببینند فلهولا كانت قرية آمنه فنفعها ايمانها، الا قوم يونس لما آمن كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاة الدنیا ومتعناهم الی حین پس چرا هیچ شرح و آبادی ایمان نیاورد که ایمانشان سودشان دهد مگر قوم یونس چون ایمان آوردند عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا از آنها برطرف کردیم و تا مدتی معین آنها را بهرهمند ساختیم او شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميع اف انت حتى یکونوا مؤمنين و اگر پروردگار تو میخواست، مسلما تمام کسانی که در روی زمین هستند همگی ایمان میآوردند آیا تو می خواهی مردم را مجبور کنی تا که ایمان بیاورند وما و ما کان لنفس ان تؤمن الا اجعل الرجل على الذين لا هیچ کس جز به فرمان خدا نمیتواند ایمان بیاورد و خداوند پلیدی را بر کسانی که نمی اندیشند قرار می دهد قل ماذا في السماوات والأرض و ما تغنی الآیات و النبر عن قوم لا يؤمنون بگو بینگرید چه چیز در آسمان ها و زمین است و این آیات و هشدارها به حال گروهی که ایمان نمی آورند سودی نمی بخشد فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلومی قبلهم قل فا اینی معکم من پس آیا آنها چیزی جز همانند روزهای کسانی را که پیش از آنها گذشتند انتظار میکشند بگو پس منتظر باشید که بیگمان من نیز با شما از منتظرانم. ثم من نجی رسولنا و آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین سپس پیام برانمان و کسانی را که ایمان آبرده اند نجات میدهیم دهیم اینگونه بر ما حق است که مؤمنان را نجات دهیم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 فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرتم ان اكون من المؤمنين بگو ای مردم اگر از دین من در شک هستید پس من کسانی را که شما به جای الله پرستش میکنید نمیپرستم ولی کن من تنها الله را میپرستم که شما را میمیراند و من معمور شده ام از مؤمنان باشم و ان اقیم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من الْمُشْرِكِينَ و این روی خود را به آین حنیف متوجه کن و هرگز از مشکان مباش ولا لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين و به جای الله چیزی را که نسودی به تو میرساند و نه زیانی به تو میرساند نخوان پس اگر چنین کنی بیگمان از ستم کاران خواهی بود و این یمسک الله بضر فلا له الا و اي يريدك بخير فلا را والدل فضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم فا اگر خداوند زیانی به توبرساند پس جز او هیچ کس نتواند آن را برطرف کند و اگر اراده خیری برای تو کند پس هیچ کس فضل او را باز نتواند داشت به هر کس از بندگانش که بخواهد میرساند و او آمرزندی مهربان است قل یا ایوه الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن وما بگو ای مردم بی تردید حق از طرف پروردگارتان برای شما آمد پس هر کس هدایت شد برای خود هدایت شده و هر کس گمراه شد پس به زیان خود گمراه شده است و من نگهبان بر شما نیستم و اتبع ما یوحا ایلیک و اصبر حتی الله وهو هو خیر و از آنچه به تو وحی می شود پیروی کن و صبر کن تا خداوند داوری کند و او بهترین داوران است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان الف کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لد حکیم خبیر لام را این کتابی است که آیاتش سپس روشن شده از نزد حکیم آگاه است اللا تعبدون این الله لکم که جز الله را نپرستید که من از سوی او هشدار دهنده و بشارت دهنده برای شما هستم و انستغفر ربکم ثمتو بود إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسموا ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به سوی او توبه کنید تا شما را تا مدت معینی به بحری خوبی بهرمن سازد و هر صاحب فضلی را به اندازی فضلش ببخشد و اگر روی بگردانید پس من بر شما از عذاب روز بزرگ بیمناک هستم الى الله مرجعكم و هو على كل شيء قدیر بازگشت شما به سوی الله است و او بر همه چیز تواناست الا انهم یثنون صدورهم لیستخفو منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور آگاه باشید آنها سینہهاشان را خم میکنند و سرها به هم نزدیک میکنند تا خود را از او پنهان دارند آگاه باشید وقتی که آنها لباسهای خیش را به سر می کشند خداوند میداند آنچه را در دل پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازند بی او به راز دلها آگاه است